داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان سفر به یک سرزمین عجیب روزی روزگاری در سرزمینی دوردست، بازرگان پیری با پسرش آرجان زندگی می کرد. یه روز بازرگان پیر به پسرش گفت دو اسب نجیب و عصیل اینجا وجود داره که من با دقت اونا رو پرورش دادم و تربیت کردم. کشوری رو می شناسم که توی اون اسبای خوب و عصیل کمیابند. اونجا قیمت هر رس اسب حد اقل یک ست سکه یه تلاست. این کشور در جنوب دور قرار داره و من پیرمرد قادر نیستم که به چنین سفری برم. اما اگه تو به اندازه کافی شجاع و قوی باشی و بتونی به این سفر طولانی بری میتونی ها رو در سرزمین جنوبی به قیمت خیلی بالایی بفروشی. آر جان با اشتیاق در انتظار سفر به اون سرزمین دور شد اما پدرش بهش تذکر داد یادت باشه هرگز به سمت شرق نری چون ممکنه به سرزمینی برسی که مردم شروری داره هر کس به این سرزمین دردسرساز رفته بدون مشکل برنگشته یه بارم خود من به اونجا رفتم اما قیمت زیادی بابت این حماقتم پرداختم آرجان از پدرش خواهش کرد ماجرایی که در اون سفر براش اتفاق افتاده رو تعریف کنه. پیرمرد گفت یادت هست وقتی بچه بودی با برادر بزرگت چه بازیایی می کردی؟ بعد ادامه داد پونزده سال قبل من به یه سفر تجاری رفتم و جاهای مختلفی رو دیدم. برادر بزرگت اون موقع چهارده ساله بود. منو همراهی می کرد. فکر میکردم که دیدن سرزمین های دور و مردم اونجا میتونه آموزش مناسبی براش باشه. موقع برگشتن شانسی آوردیم و سر از یک کشور در آوردیم. قروب به اونجا رسیده بودیم و شب رو توی یه مسافرخونه گذروندیم. از طرز رفتار و گفتار مردم اون سرزمین فهمیدم که به سرزمینی وارد شدم که خیلیا بهم به هم داده بودن اونجا نرم. به همین خاطر، خیلی دوست داشتم که هرچه زودتر اونجا رو ترک کنم. روز بعد صبح خیلی زود وقتی داشتم صورت حساب مسافرخونه رو می پرداختم برادر صاحب مسافرخونه در حالی که بالا و پایین می پرید و از سرنوشت خودش می نالید، به من گفت که من باعث شدم همسرش فرزند مرده ای به دنیا بیاره. تعجب و حیرت من حد و مرز نداشت. این مرد رزل ادعا می کرد که دیروز بعد از ظهری که من وارد شدم موقع پیاده شدن از اسب نفس بسیار عمیقی کشیدم و این کار باعث شده مسیر حشره کوچکی که پرواز کنان از مسافرخونه خارج می میشده تغییر کنه و بره به اتاقی که زن برادر مسافرخونه چی مشغول وضع حمل بوده اون وقت حشره وارد سوراخ دماغش میشه و زن عطسه میکنه و در نتیجه بچه مرده به دنیا میاد. هنوز من نتونسته بودم پاسخی به این تهمت مزخرف بدم که دو دورم جمع شدن و از اون مرد حمایت کردن. گیج شده بودم. اونا پسرمو از من جدا کردن و اصرار داشتن که من باعث شدم فرزند اون مرد بمیره. به همین دلیل باید پسر بیچارم به عنوان برده در خدمتشون باشه. پیرمرد همونطور که داستان خودش رو حکایت میکرد، عشق میریخت. آرجان به خاطر این حالت پدرش خیلی غمگین شد. گفت پدر مطمئن باشید هرگز پام رو به اون سرزمین پرفتنه نمیگذارم. آرجان راهی سفر به سرزمین جنوبی شد و دو اسب رو هم با خودش برد. چند روز بعد به ساحل رودخانه رسید. رودخونه متلاتم بود. مردی که مردم رو به اون طرف رودخونه میبرد حاضر نشد اسب‌ها رو با قایق که خودش از رودخونه رد کنه به آرجان اصرار کرد که به سمت غرب بره گفت که اگه به سمت غرب بره میتونه با قایقرانی که قایق داره از رودخونه عبور کنه آرجان به ناچار مسیرش رو به سمت غرب تغییر داد اما ناگهان تندبادی شروع به وزیدن کرد و او به دنبال مسافر خونه ای بود تا به اونجا پناه ببره. بعد ستونی از دود رو دید که از پشت کوهی همون نزدیکی ها بالا می رفت. به همراه دو اسبش به سختی از کوه بالا رفت و وقتی گردباد فروکش کرد، پایین کوه یه ده کرده دید. وقتی مسافتی طولانی رو به سمت غرب می کرد، با خودش گفت شاید این دهکده قسمتی از سرزمینی باشه که اون مردم دغلباز و شرور رو داره پس تصمیم گرفت برگرده اما حس کنجکاویش بهش میگفت بهتره بره و ببینه چه مردمی توی این سرزمین افثانه ای زندگی میکنه اون وقت به سمت جلو خم شد تا از لبه سخرهی به پایین نگاه کنه که پاش روی قسمت سست صخره قرار گرفت لغزید و با کله به پایین کوه و به طرف دهکده رفتید. اسب‌ها هم چهار نعل پایین می اومدن و کنارش ایستادند. پیرمردی که داشت از اونجا میگذشت، جست و خیزکنان به سمتش دوید. آرجان بلند شد و ایستاد. خوشبختانه صدمه جدی بهش وارد نشده بود. اون وقت از اینکه میدید پیرمرد داره با دقت بهش نگاه میکنه، خوشحال شد و با خودش گفت: عجب حتی توی این سرزمین بدنام هم مردمی وجود دارند که نگران بقیه بشن. آرجان میخواست از پیرمرد تشکر کنه که ناگهان پیرمرد قورباغه له ای رو که زیر بدن آرجان مونده بود نشون داد و شروع کرد به گریه زاری. بریده بریده میگفت: آی قورباغه دوست داشتنی من، ای کودک کوچک من، چطور میتونم انتقام مرگ تو رو بگیرم؟ بعد همه روستایا دور اونا جمع شدن و با یه زبون عجیب و غریبی با پیرمرد صحبت کردند. بالاخره هم به آرجان توضیح دادن که این پیرمرد بچه ای نداشته و اون قرباقه را به فرزندی پذیرفته بوده. این قرباقه خونگی هم خیلی وظیف شناس و فداکار بوده و تعجبی نداره که پیرمرد از مرگ او احساس بیکسی و دلتنگی کنه. و در مرگ عجیبترین قرباقی سرزمین خودش اینطور بیتاب بشه. لحظه ای بعد تعدادی از مردم به نشانه همدردی با پیرمرد شروع به گریه کردن. آرجان که نمیدونست چه کار باید بکنه، سعی کرد اون مکان رو ترک کنه. از مردم پرسید چطور میتونه پیرمرد رو تسکین بده؟ که ناگهان پیرمرد گفت باید یکی از اسباتو به من بدی. ارجون با عصبانیت پرسید: چی؟ یه اسب برای یه قورباغه؟ پیرمرد گفت: مرد جوان، آیا یه اسب میتونه با عرضش تر از یه پسر برای پدرش باشه؟ بالاخره بازرگان جوان مجبور شد یکی از اون اسب‌های زیباش رو به اون پیرمرد حقوق باز بده و با قلبی غمگین دهکده رو ترک کنه. بالا رفتن از کوه براش سخت بود. میخواست راه دیگه ای پیدا کنه. به همین خاطر بعد از مدتی به یه دهکده دیگه در دامنه کوه رسید. گروسنه و تشنه به کنار نزدیکترین خونه رفت و در زد. یه مرد یه چشمی در رو باز کرد. آرجان درخواست یه مقدار آب و غذا کرد. مرد یه چشم گفت نمیتونم بهت غذا بدم اما میتونم اونقدر آب بهت بدم که شکمتو پر کنی. چیزی که تو لازم داری اینه که شکمت پر بشه، اینطور نیست؟ آرجان یه مقدار آب نوشید و از مرد تشکر کرد. داشت از اونجا دور میشد شد که مرد یه چشم ازش پرسید از کجا اومدی اسم پدرت چیه؟ همین که آرجان اسم پدرش رو گفت، مرد یه چشم جلو دوید و بازوش رو گرفت و گفت ها، بالاخره گیره دو بردم مرد جوون، 20 سال پیش من به شهر شما رفته بودم تا تجارت کنم. متاسفانه همه پولای من به سرقت رفت. پدرتو خوب میشتاختم. پیشش رفتم تا دو سکه قرض کنم. اما او بدون زامن و سپرده حاضر نشد پولی به من قرض بده. منم هیچی نداشتم که پیشش گرو بذارم. بنابراین پیشنهاد داد تا یکی از چشمام رو پیشش گرو بذارم. منم که ناچار به پول احتیاج داشتم، اجازه دادم او چشم منو در بیاره. پدرت قول داده بود یه سال بعد به کشور ما بیاد و چشم منو پس بده. اما حالا بیست سال از اون زمان میگذره و خبری ازش نشده. حالا من تو رو گروه دارم. باید چشم منو پس بدی؟ پسران در مقابل دین پدران خودشون مسئولن. من آماده هم دو سکه ای رو که از پدرت قرض گرفتم پس بدم و حتی سه سکه هم به عنوان سود روش بذارم. اما تو هم باید چشم منو برگردونی. خیلی زود مرد یک چشم تعدادی نگهبان رو دور اون پسر جمع کرد. آرجان که اشکش داشت در میومد گفت: من چیزی در مورد چشم تو نمیدونم. به من بگو چه کار باید بکنم تا اجازه بدی برم. مرد یک چشم پاسخ داد: میتونی بدون اسبت بری. آرجان بدون اسب اونجا رو ترک کرد و دور شد. تمام بدنش درد می کرد. افتادن از کوه از یه طرف و غم از دست دادن دو اسب گرانبها ها از طرف دیگه قلبش رو به درد آورده بود. از گرسنگی هم نا نداشت که دورتر بره. پس زیر درختی نشست و گریه کرد. یه مرد جوان از اونجا میگذشت وقتی او رو توی اون حال دید ایستاد و پرسید کی هستی تو؟ چرا گریه میکنی؟ آرجان جوابی نداد. دیگه میترسید با هیچکس از اهالی این سرزمین گفتگو و گو کنه. غریبه اونقدر اصرار کرد و اونقدر مهربان به نظر میرسید که آرجان به طور خلاصه برای شرح داد چطوری دوتا اسب گرانباهاش رو از دست داده. مرد غریبه یه مدت ساکت موند و فکر کرد. بعد گفت بلند شو بریم پیش پادشاه. فکر میکنم بتونیم اسبا رو پس بگیریم. آرجان که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت تردید رو کنار گذاشت و همراه غریبه راهی شد تا برن پیش پادشاه. در طول راه غریبه حرفایی را که باید آرجان به پادشاه میگفت بهش یاد داد. بعد از اینکه پادشاه به حرفهای آرجان گوش داد پیرمرد و مرد یک چشم رو احسار کرد و محاکمه شروع شد. وقتی پیرمرد اعلام کرد که قرباقه مرده پسرخانده او بوده مرد جوان قورباغه زنده ای را از جیب لباسش بیرون آورد و رو به شاه کرد و گفت آلی جناب من تازه این قورباغه را به فرزند خوندگی قبول کردم اجازه بدین این قورباغه را پایین کوه بذارم اون وقت پیرمرد به تلافی مرگ فرزند خونده خودش از بالای کوه غلط بزن و بیفته روی پسرخونده من و اونو بکشه پادشاه گفت قبول میکنم این کاملا منصفانه است کسی نمیتونه به این پیشنهاد عاقلانه اعتراض کنه این را حل درستیه پیرمرد که حاضر و انجام چنین این خطری نبود بدون هیچ اعتراضی اسب رو به آرجان پس داد و رفت حالا نوبت مرد یه چشم بود آرجان در دفاع از خودش گفت آلی جناب پدرم بدون شک عادتهای عجیبی داره یکی از عادتهاش جمع کردن چشمهای مردمه در واقع توی مغازه ما هزاران چشم موجوده. من آمادم چشم این آقا رو برگردونم اما این کار غیر ممکنه چون نمیتونم چشمش رو در بین اون همه چشم پیدا کنم. پیشنهاد میکنم اجازه بده که چشم دیگشم با خودم ببرم تا خیلی سریع چشمش رو براش پیدا کنم و بیارم. پادشاه گفت عجب فکر خوبی؟ بله، لازم نیست بگیم که اون مرد یه چشم با چه سرعتی اسب رو به مرد جوون پس داد چون اصلا نمیخواست تنها چشم خودشم از دست بده. مرد غریبه به آرجان گفت بیا تو رو تا مرز این کشور همراهی کنم تا مطمئن بشم که سالم و بدون درد سر از اینجا دور میشی وقتی اون دو با هم صحبت و درد دل میکردند آرجان متوجه شد که مرد غریبه کسی جز برادر گم شدهش نیست که مدتها در خدمت مرد و زن بدجنسی بوده و کارهای اونا را انجام میداده تا اینکه اونا مردن و او منتظر فرصتی بوده به کشور خودش برگرده زندگی در کنار مردم حقوق باز این کشور بهش آموخته بود که چطوری باید با اونا مقابله و معامله کنه هر دو برادر خوشحال از پیدا کردن همدیگه سرزمین غرب رو ترک کردن و به سرعت به سرزمین جنوب دور رفتد و عصبها رو با قیمت بسیار خوب فروختند و به کشور خودشون برگشتند. پدرشون با دیدن اونا احساس میکرد که حالا خوشحال ترین پدر دنیا است. کانال تلگرامی هزار افثان. داستان های افثانه ای صوتی